Up. Up. Up. Up. وانی فارسی بنوی خواندی گوره او دلوفان ویلانی خوشوستی برنامه وانی فارسی سلام تنلیبی اورکان من محمد و رامین امروز چون تفرجگاو هندی شد دکتران. سوپرمارکتکا لنجیج بشینیم خویی خرید کردن. لواطویج لگل آوان دا کابلی دوکندر پیدا زنی که آوان برنامه امروز هندی گوشو و کوترستی نوید بیسین. حرامان بن لاموانیده. بفرمایید بفرمایید فرمون چه شما میخواید؟ چی شما میخواهید شما میخواهید چی تنده به؟ پاکت پاکت پاکت ماست ماست ماست کره کره رونا نوشابه نوشابه سردی ما می‌خویم ما می‌خویم ده منو ما لازم داریم ما لازم داریم. پیستمانا. دو، دو، دو. سه، سه، سه. صابون، صابون، صابون. شامپو، شامپو، شامپو. کنسرو. conserve conserve mahi mahi Masi conserve mahi conserve mahi conserve Masi diyar chi diyar chi chidika nun nun nun anja anja aver ma darim ma darim hamana shishe shishe betel آب لیمو آب شیر شیر شیر شما بدهید شما بدهید او بیدن راستی راستی آره تخم مرغ تخم مرغ هلکا، پنیره پنیره پنیر. پنیر او می خواهد او می خواهد دی برنج برنج برنج روغنه روغن، رون، كامي، كامي، كميك. ما نداريم، ما نداريم، نيمانا. لطفان، لطفان، تكايا. ما هستيم، ما هستيم، هين. ما نستيم، ما نستيم. نین کدام کدام کم ساختمان ساختمان بنا احتمالاً احتمالاً لوانیا همکلاسی همکلاسی هاوپل دوست دوست هاوره متشکرم متشکرم سپاس صدکم یستا که وشکانتان بیست سرنجی و توجهی محمد و رامین بدن لانی و فروج کده چه می خواهید ؟ بفرمایید چه می خواهید؟ ما یک صرف ماست، دو بسته کره و یک نوشابه می خواهیم. ما یک صرف ماست، دو بسته کره و، یک نوشابه می عدد صابون، یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. سه عدد صابون، یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان می‌خواهید؟ دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان می‌خواهید؟ خیر. ممنون. یک شیشه آب لیمون و دو بطری شیر هم بدهید. خیر، ممنون، یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید. راستی سعید هم چندتا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد. رامین، ما برنج و روغن داریم. راستی سعید هم چندتا تخم مرغ و یک بست پنیر می خواهد. رامین، ما برنج و روغن داریم؟ بله، کمی برنج داریم اما روغن نداریم. بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم. پس آقا لطفاً تخم و مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید. پس آقا لطفاً تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید. حیوان درم بوردی جهتان با آموت ویجا را گرفت به زور بودهان لاموت ویجا دبیست با جاری کدیکش جواب با آموت ویجا رابگرند آمزار ویجا که بورگیرانه و براوده به بفرمایید چه می خواهید؟ فرمان چی تندوه؟ ما یک ظرف ماست دو وسه کره و، یک نوشابه می خواهیم. اما، دفرگ ماست، دو سال رون کره، سر یک مندهه سه عدد صابون، یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. سه سالک صابون، شامپوی یکو، دو کنسرو ماسشمانده و دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان می‌خواهید؟ چی دیگه؟ نانش لویه؟ نان تانده خیر. ممنون. یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید. نخیر، سپس، بطلک اوی لیمو دو بطر شیریش من راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می رامین، ما روغن و برنج داریم اره، سعیدش چند هلکه و سلک پنیر اکی دوه رامین، ایم برنج و روغن بله، کمی برنج داریم، اما روغن نداریم بله، کمک برینجمن هیا، بلن رون من نیا پس آقا لطفاً تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید کوابوت که هلکه هلکو پنیر و رونشمنده وید روشیار اشتکان لتان دل قیداو لکاتک داکا بماشین حساب نرخ کان حساب دکات شما دانشجو هستید؟ ایو خواند کارن. بله ما دانشجو هستیم. بله ای ما شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ ایو لکان بنا دن. بنا یسه؟ خیر. ما در ساختمان دو هستیم. نه خیر، املا بی نجوم ما ردیدن. پس احتمالاً همکلاسی هستید. کواتالوانی لیک پول خیر، ما با هم دوست هستیم. نه خیر، اما پیکواتهاورین. عزیزان و گیشتین کتایی به نامه امروی وانه فرسیش. تا وانی اکی و به گیشنوی اکی دیکه به خواهی گوره و دسپیرین.